کیمیا، قونیه، 645. با هم نخوابیدیم، حتی یک بار شش ماه هست ازدواج کردیم، اما هنوز زن و شوهر نشدیم برای اینکه آدمهای آدم های دورو برم متوجه موضوع نشوند، هر کاری از دستم بر بیاید اما به این سادگی ها هم نیست، شک می کنند. شاید هم شرمندگیم را از صورتم می خانند. مثل لکی روی پیشانیم. نگاهم که می کنند، اولین چیزی که می بینند این است. وقتی توی کوچه با دوست و آشنا حرف میزنم، توی مزرعه و جالیس کار میکنم. توی بازار خرید میکنم، توی خانه از مهمان پذیرایی میکنم. شاید اولین چیزی که همه متوجهش میشوند این است. همه میدانند زنی شوهردار، اما هنوز باکره. البته این طورها هم نیست که شمس اصلا به اتاقم نیاید، میآید. و هر وقت که بخواهد پیشم بیاید حتما از قبل خبرم می کند و میپرسد آمدنش اشکالی دارد یا نه؟ هر بار هم من جواب همیشگی را می دهم. میگویم البته که اشکالی ندارد. من همسر شرعی تو. هم. شبهایی که او قرار است بیاید تمام روز بیصبرانه انتظار میکشم. و دعا می کنم وصل مرا بخواهد اما شب که می آید دقل باب می کند و داخل می شود تنها کاری که می کند نشستن و صحبت کردن است می خواهد با هم کتاب بخوانی. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، یوسف و زلیخا، گل و بلبل حکایت عشاقی که در مقابل همه دشواریها سینه سپر کردند و عشقشان را حفظ کردند. اینها را که میخوانم دلم میگیرد. شاید چون میدانم مزه چنین عشقی را هیچ وقت نخواهم چشید. گاه نیز به پشت دراز میکشد. و برایم درباره چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند، صحبت می کند. یک شب در حالی که داشت یکی از قاعده ها را شرح میداد یکدفعه یک دفعه ساکت شد و چشمهایش را بست. دیدم خوابش برده، سرش را روی زانوهایم گذاشتم. موهایش را که دیگر خیلی بلند شده نوازش کردم تا سپی ددم چشم بر هم نگذاشتم و تماشایش کردم یک بار توی خواب حرف زد بعد دستم را گرفت و آرام نوازش کرد خیلی وقت بود آنطور هیجان زده و خوشحال نشده بودم تا صبح کنار هم دراز کشیدیم اما همه همین بود در این شش ماه من هم گاهی به اتاقش رفتم اما همانطور که او از من اجازه می من هم حتما پیش از رفتن خبرش می وگرنه نمیدانم چطور رفتار می کند. امروز شمس به فردایش نمیخورد. حتی این لحظه به لحظه بعدش فهمیدن حالت روحیش از حل کردن معما سختتر است. بعضی وقتها خیلی بشاش و با محبت می شود. بعضی وقتها هم با یک من اصل نمی شود خوردش. یک بار در را به رویم بست و فریاد زد. راحتم بگذار. دیگر به دل نمی گیرم. نشکستن را یاد گرفتم. همینطور ناراحت نکردن او را. ماها طوری وانمود کردم که انگار همه چیز روبرا هست. نه برای گول زدن دیگران، برای گول زدن خودم. با خودم گفتم حالا که شمس مثل شوهرها رفتار نمی کند. من برایش های دیگری در نظر میگیرم دوستم بود همرازم رفیقم گاهی برادرم گاهی پسرم با توجه به وضعیت و احوال و روحیهاش گاه این میشد گاه آن توی ذهنم از کسفتی به کسفت دیگر میرفت همه کسم شد فقط شوهرم نشد مدتی به این منوال سر کردم بی آنکه انتظار زیادی داشته باشم منتظر لحظه هایی می که دو نفری بنشینی و حرف بزنی شمس برای فکرهایم ارزش قائل می شد و شادم میکرد. تشویقم میکرد کرد خلاقانه تر فکر کنم خیلی چیزها از او یاد گرفتم و مطمئنم من هم چند چیز به او یاد دادم دستکم نمیدانست خوشبختی خانوادگی یا کاشانه‌ای گرد چگونه چیزی است کمی هم که شده مزه اینها را چشاندم به او علاوه بر اینها هیچ کس مثل من نتوانست بخنداندش با این حال کافی نبود، کافی نیست. این فکر را که شمس دوستم ندارد، نمیتوانم از ذهنم بیرون کنم. شک ندارم میپسنددم و علاقه دارد به من، اما این ربطی به عشق ندارد. دلم میگیرد، از همه آدمهای دورو برم، از همه دوستها و آشناها دور شدم. دیگر ترجیح می دهم توی اتاقم بنشینم و با مرده حرف بزنم. مرده ها برخلاف زنده ها پیش داوری تنها دوستم جز مرده ها گل کویر است. چون هر بنا به دلایل خاص خودمان ترجیح داده این دور از جماعت بمانیم. رفته رفته با هم دیگر دوست شده ایم. او دیگر صوفی به حساب می آید. اثری از زندگی قبلیش در وجودش نمانده. پاک شده. یک بار گفتم شیفته جسارت، متانت و ازمش برای آغاز زندگی نو شدم. سرش را به دو طرف تکان داد و گفت، اما من، زندگی نو آغاز نکردم تنها کاری که ام مردن پیش از مرگ بوده امروز ظهر به دیدن گل کویر رفتم نمی‌خواستم متوجه بی‌حوصلگی و ناراحتیم بشود اما انگار همین که به صورتم نگاه کرد فهمید اوزا بر وفق مراد نیست گفت کیمیاجان. حالت خوب است؟ به نظر افسرده می رسی. خواستم جوری دست به سرش کنم. اما در برابر اصرارش نتوانستم مقاومت کنم و سر درد دلم باز شد. گفتم خوب نیستم. خواهش می کنم کمکم کن. گل کویر گفت «حتما بگو چه کاری باید بکنم. گفتم، مسئله شمس است، اصلا پیشم نمی آید، یعنی می آید، اما آنطور نمی آید. می خواهم دوستم داشته باشد، نه مثل برادر و رفیق، مثل شوهر. خواهش می کنم یادم بده. گفت، چه چیزی را یادت بدهم؟ گفتم، خودت که فهمیدی؟ گفت آه کیمیا جان من قسم خورده ام. با خودم عهد کرده از مسائل مربوط به تن دور بمانم حتی نمی خواهم در این باره فکر بکنم التماس کنان گفتم تو که قسمت را زیر پا نمی گذاری فقط به من کمک می کنی خیلی بیچارم نمی توانم دردم را به کسی بگویم خجالت میکشم. نمیدانم شمس را چطور خوشبخت کنم گل کویر گفت اما شمس درویش است اینطور نزدیک شدن به او صحیح نیست گفتم درویش هم که باشد خوب آدم که هست بالاخره او هم مرد است تمام پسران آدم عبول بشر گوشت و پوستند. به هر کسی بدنی عطا شده. شمس هم بدن دارد. مگر این طور نیست؟ گفت بدن دارد اما گل کویر نتوانست جمله اش را تمام کند. خودش را عقب کشید. التماسش کردم. گفتم دردم را فقط به تو میتوانم بگویم. شش ماه شده. هر روز صبح دلم از غم میگیرد. هر شب گریه کنان می خوبم. نمی اینطور ادامه بدهم. باید شوهرم را به طرف خودم بکشم. گل کویر با نگرانی نگاهم کرد اما حرفی نزد. رو سریم را روی شانهام انداختم و موهایم را باز کردم. گفتم، بگو، تو را به خدا بدون رو دروایستی بگو، من خیلی زشتم. گفت، که زشت نیستی کیمیا جان، مثل ماه شب چهارده خوشگلی. گفتم، پس کمکم کن. راهی را که به قلب مرد میرسد برایم تعریف کن گل کویر یک دفعه اخمهایش در هم رفت و گفت آن راه آن قدرها هم که فکر میکنی بی خطر نیست مواظب باش راهی که به قلب مرد میرسد راهی نباشد که زن را از خودش دور میکند موقعی که میخواهی او را به طرف خودت بکشی با خودت غریبه نشوی. نفهمیدم منظورش چیست؟ سعی هم نکردم بفهمم. گفتم: مهم نیست دیگر هرچه چه باد آباد. برای همه چیز آمادم.